اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خداوند تبارک و تالا رو بسیار سپاس و تشکر میکنیم چون تشکر از خداوند نیاز ما هست و اون چیزی که نیاز هست باز هم نیاز هست لعی لأ شکرتم لعزیدن نکن شکر نعمت نعمتت افزون کند ادب شناسی یک نوع ادب هست و انسان های مؤدب همیشه محبوبن، همیشه عزیزن. پیش خدا و پیش خلق خدا فرق نمی بسیار تلاوت زیبا شنیدیم بسیار دعای پرمحتوا و زیبا که هر جمله از این دعاها اگر به محتوی اونها فکر بکنیم جز رفع درجات و جز ارتقا و رشد و جز امنیت و آرامش و جز تهارت و پاکی و جز کمال چیز دیگر نیست خداوند بندگانش یاد داده که چطوری دعا بکنن و با دعا خودشون رو به کبال برسانن رشد بدهن ادعونی استجب لکم هرچی میخوایی من اجابت میکنم ادعونی استجب لکم مشکل دعامون حل بکنین مشکل اجابتش خود به خود حل بکنیم ما مشکل دعا داریم زود از دعا کردن خسته میشیم امشب یکی از های بسیار زیبا و بیادماندنی و پرخاطره ماه خاطره هاست یا ماه خاطرات زیباست من فکر نمی کنم انسان مسلمان به اندازه ماه مبارک رمضان می تونه خاطره داشته باشه بیشتر از این دیگه نمیشه. شه ماه مبارک رمضان بستان است و بهار است برای انسان مسلمان و خاطرات زیبا می تواند در این ماه بیافریند اما بحث امروز اونجایی که برادرمون توقف کردن آیه 125 سوره انعام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن اللَّهُ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون ست آیه هر کدوم زیباتر از قبل و شبیه این آیه در قرآن زیاد هست و كل قرآن جمع شده تو همین آیه و انشراح صدر ایجاد می‌کنه معنی ظاهری این آیه رو من بگم بعد میپردازم پردازم به تفصیلش به اون اندازه که خدا خداوند تبارک و تالا به ما و شما توفیق خوب گفتن و توفیق خوب شنیدن و خوب عمل کردن اینهایت بفرماییم معنی ظاهریش یک نقطه خیلی ذریفی هم هست که پیشرفت علمی اونو ثابت کرده و از اونجایی که دانشجی های علم پیزیشکه هم اینجا هستم من برمیگردم به چند شب پیش یک آیه تو خاطرم بود که تفسیر بکنم ولی فرصت نشد دیگه رد شدیم اون آیه هم یه اشاره‌ای بهش کنم از نظر علمی چیزهای ثابت شده که بد نیست بدانند خب فمن يرد الله و ان يهديه يشرح و صدره للاسلام یعنی کسی که خداوند اراده هدایت اون بکند و قصد خیر برای اون داشته باشد و هدایت را برای اون بخواهد قلبش را منشره میکنه قبل از هدایت آماده میکنه برای پذیرفتن هدایت در نتیجه هدایت به محلی برخورد میکنه که زمینش فراهم شده و خداوند آماده کرده که این دل هدایت بشه چون خصوصیاتی درش دیده قلب درش دیده زمینه رسیدن هدایت به قلبش هم فراهم میکنه و من یُرِدْ أَنْ لهو کسی که قصد هدایتش کرد نخواست هدایت بشه یا وقتی سوء تفاهم نشه خداوند گفته و من لهو کسی که خدا خدا خواست گمراهش می‌کنه خداوند نمیخواد بی خود و بی جهت بندگانش را گمراه بکنه کسی که خداوند دوباره منش اینه قصد هدایت بش میکنه اما اون نمی‌تذیر هدایت خداوند اینجا گمراهی خود به خود نصیبش میشه و تشبیهش خیلی زیباست یجعل صدره دیقا اونقدر سیناش و قفسه سیناش و قلبش و دلش تنگ میشه فشرده میشه به هم کوبیده میشه که حد و حسابی ندارد وقتی گمراهی در دل قرار میگیرد دلو میفشارد دلو تنگ میکنه وقتی هدایت مجراش مجرای هدایت در دل تن میشه دل رو میفشاره هرچی مایه حیات تو دل هست از خونهای پاک چه مادی چه معندی میفشاره تا همه بچکه و دل خوش میشه و تشمیه میکنه این 1427 سال پیامبر پیش تلاوت کرده خوب دقت بکنن اونهایی که اهل تحقیقاً خصوصاً دانشجو بعد میگه يجعل صقره ضيقا حرجاً مستقر في لرزان لحظه حالا تشبيهشو ببینید که انما يسعد في سما مثل اینکه در آسمان داره بالا میره يسعد یعنی تکرار میکنه بالا رفتن در آسمان و هی بالا میره هی بالا میره تا جایی که دیگه چه؟ اکسیژن کم میشه اکسیژن که کم شد چه حالتی بهش دست میده؟ نفس تنگی. از کجا میفهمه پیامبر صلی اللہ علیه کسی که در آسمان بره بالا 1427 سال پیش. که اگر کسی در آسمان بره بالا اونجا اکسیژن کم میشه هی نفس تنگی بهش دست میده این تشبیه میکنه کسی که خداوند هدایت رو از دلش میگیره و دلش رو فشار مسترم میشه میسی که نفس تنگی وش دست میده میروی تو هوا طرف تو هفای نشسته اکسیژن تنظیم شده تو هفای ما بازم چه وقتی میره بالا بعضی ها کم میارن 24000 پا 25000 پا 30000 پا سبحان الله چه تشبیح ولیویه این یکی از آیاته که نشان دهندی اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله از جانب خدا میگفته سوار آهو که نشوده اون با براق رفته بدون دست با اکسیژن رفته فاصله خورشید تا زمین چقدره قابل تصور نیست که چقدر رفته خورشید که چقدر به زمین نزدیکه هفت آسمان رفته، صدرت المنته رفته، مقام قلم رفته به عرش خدا هم یعنی بعد از اون دیگه خداست هست، عرش خداست. ده تا معراج بدون نفس تنگی، ولی میدونه افراد اگر طبیعتاً برن بالا، کم میارن و واقعاً تشبیه بلیغه هر کسی که هدایت در دلش نیسته، همیشه آسی داره، همیشه کمبود نفس داره همیشه مستربه و به سکت کردن و ایست قلبی و مغزی نزدی که یا به خود پوشی در تاریخ صدر اسلام نکسی سکت کرده، نکسی خود پوشی کرده خیلی نادر شاید حالا مورد ولی امروز حتی پرفسار همچه روانشناسا و مشاورین که مراکز مشابری هم دادن احيانا خودکشی میکنن یا استقلبی دارن یا استمحزی دارن یا سدری توستی دارن علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب یه بار دیگه برمیگردم میگم فمن يرد الله ان يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام و من يرد ان يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السما كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون کسانی که پاکی نمیپذیرند خداوند اینطوری توسط اراده خودشون آلودگی بر دلهای اونها می میشود. رجس یعنی پلیدی و آلودگی و مثل خوره بر جانشان میافتد و اونها را از طاهر می‌آورد و هذا صراط ربك مستقیما این راه خدا مستقیمه هر کسی منحرف شد دلشم منحرف شده دیگه استقامت نصیبش نمیشه فتفسلنا الایات للقوم ما آیات خودمون را مفصلا بیان کردیم چه کسی هست که درس بگیره چه کسی هست که اعتنایی بکنه لهم دار السلام عند ربهم نزد پروردگارشون دار السلام هست دار السلام میدونی کجاست بهشت خدا یکی از نامهای های بهش دار سلامه جایی که احسان احساس امنیت و سلامتی و از هیچ خطری نمی و هیچ خطری او را تهدید نمی کند و هو ولی هم بالاتر از دار سلام این که خدا باشونه خدا دوستشونه ولیشونه خدا به اونها نزدیکه با خدا یکی میشن اونجا و هو ولی هم به مکان عملون به سبب اطاعت و فرمانبرداری که از خداوند دارم خداوند ولیشون هست ابن قیم جوزی در کتاب زاد المعاد که یکی از بهترین کتابهای این بزرغ هست اسباب انشراح صد رو بیان میکنه و همین آیه رو میاره و این آیه اسبابی که سبب آرامش دل انسان می شود سبب وسعت دل می شود سبب انشراح صدر می شود سبب امنیت و آرامش روحی و روانی انسان می شود یکی بعد از دیگری مستدل بیان می کند و امروز جامعه بشری و انسانی و اسلامی چقدر نیاز به امنیت و آرامش دارند که ندارند؟ با پولم نمیشه خرید با تکنولوژی هم نمیشه خرید با فرستادن به کره ماه و یکی بعد از دیگری این سیاراتو کش کردن هم نمیشه خرید اسباب انشراح سعر هرچی کتاب روانشناسی و مراکز مشاوره ای در دنیا بیشتر میشه خودکوشی ها بالاتر میره تو این چند سال اخیر پنشیش سال اخیر چقدر کتاب روانشناسی ترجمه شده با قیمت گذا فروخته میشه ولی کارساز نیست روانشناسی و روانشناسان نمیتونن جامعه بشری را امنیت برحشن علا به ذکر الله تطمئن رو کنون. اسلام در ظرف بیست و سه سال شرابخاران هرفه که برای شراب سی تا اسم گذاشته بودن و به عنوان معشوقی خودشون غزلخانی می کردن درباری شراب که میدونه چیکار میکنه و سنگدلان این که دخترانشان را با دست خودشان زنده به گور میکردن طور آرامشون کرد، مطمئنشون کرد، اممیاد بشون داد، تربیتشون کرد رحیم و شفیق و با آتفشون کرد که حد و حدود نداره همونایی که گفتراشون زندگور می میکردن بعد های گفت که بهش زیر پای مادرانه و مادران امروز دختران فردا هستن، دختران دیروزن بهش زیر پای همین مادران قرار و تسلیمشان کرد و از کانال مادر بهشت برای خودشون می‌کردند این امنیتیست است که اسلام آورده امروز دوباره مادران امروز و فردا و مادران فردا که دختران امروز باشند دوباره منحرف می‌کنند عکسش زدن پشت شامپو و صابون که به فروش برسانند آوردنش لختش کردن و عامل قتل و جرم و جنایت و ایز و و بیماری های در جامعه قرار دادن و آمل خنویزی و فساد و تباهی و اسراف و ایاشی و انواع میکروب ها برای جامعه قرار دادند. اما اسلام آورد در نتیجه الان چند میلیون در دنیا مصاب به این زن که امنیت ندارند. اسلام آورد دختری که به زندگور می کردن برای فحشا با این ها در عرب جاهلیت اونها رو آورد گفت بهش زیر پالی این هاست الجنت تحت اقدام الامهات امنیت برای جامعه خرید به جایی رسان که حضرت آمر رضی الله عنهو میفرمایند امروز روزی بر اسلام رسیده از برکت اسلام که یک زن به تنهایی از مدینه در تاریکی شب در این بیابان برهوب تا پای تخت یمن سنعا میرود بجز الله از الله بر خود و از چیزی دیگر هراستان میست و نمیترسند فقط از الله میترسد چقدر امنیت ایجاد کرده علا به ذکر الله تطنیب امن القلوب امن خیم جازی رحمت الله علیه هنگامی که میخواد این آیه رو شهر بده نه تا سبب برای انشراح صدر بیان میکنه نه سبب نه عامل برای منشرح شدن صدر برای آرامش دل و جان و روح و روان اسباب و شرح صبره بزرگترین عامل انشراح صدر ابن القیم میگه الهدا و توحید هدایت و توحید. اگر هدایت و توحید بزرگترین عامل انشراح صدره شرک و تعدد در خدایان وقتی قلب انسان مرد متمرکز باشه به یک نقطه ای که کل نظام هستی به اون مرتبطه و همیشه پایداره این قلبم پایداره و وقتی قلب انسان مرتبط فنا باشه این خداش نور به خدای دیگه متصل میشه هر روز صدها خدا برای خودش ایجاد میکنه در نتیجه دل پراکنده میشود پس بزرگترین عامل برای انشراح صدر نگه توحید دل رو یکپارچه میکنه توحید خداوند لا اله الا الله الله این اسامی خدا که تو نماز برده میشد الله الرحمن الرحیم هم و قیام های این نام ها انسان پی ببره توحید داشته باشه در هدایت کامل باشه به اندازه کمال در هدایت و توحید به همون اندازه آرامش دل دارید و انشراح صد دارید الم نشرح لك صدرک نشرح صدرک این منت خدا بر پیام بره نشرح لك صدرک این سوره خصوصیه سوره انشراح و ودعنا عنکا وزرک الَّذِی اَنْ ظهرك وَهْرَكْ نَزْدیک بود کمرتو رو کنه انشراح بزرگترین آمیلی که پران بر صدر داشت، توحید و یک کافر بود در نتیجه اولین کاری که کرد سیزده سال همه بطه رو خورد کرد، تو دلها خوردش کرد. اول بطه ها رو تو دلها کمرن کرد بعد از سیزده سال آمد بطه بیرونی رو کرد این نقطه در دعوت خیلی مهمه اول رشی بطه ها رو تو دلها سوزن اونم با قناعت سیزده سال فقط عرب وادار کرد که فکر میکنه فکر کردن یاد عرب داد که این سندها چیه؟ این مجسمه ها چیه؟ سیزده سال فقط میبو فکر کنید وقتی فکر کردن الله واحد پیدا کردن وقتی الله واحد پیدا کردن خودشون هم یک پارچه و واحد شدن آرام گرفتن دیگه گفتن الله اکبر دیگه سی سد و شستا نمیدیدن وقتی چش پراکنده شد دلم پراکنده میشه هدایت و کوهی بزرگترین آمل انشراح صدره دومین دومین آمل ابن القیم میگه ان نوری که الله در قلب, قلب عبده نور ایمان است به خدا که تو دل یک گنده قرار میده. شد دلی به خدا تو نشون دادی که خدا این نورشو بلند بکنه بندازه تو دلت. و در ابو بکر صدیق پایان برسل الله علیه و سلم میگه بکر صدیق این شایستگی رو پیدا نکرده و این جایگاه رو پیدا نکرده مگر با نوری که خداوند قرض کند دل او. از خدا به طلب تا دل بکنه و این نور خودش الله و نور و والارض و پرد بکنه تو دلت نور ایمان یعنی یشرح الصدر و یوسته او و یفرح القلب چه تعبیرای زیبایی داره من همه تعبیراش ننوشتم من شاید هفاش صفه رو تو یک صفحه خلاصه کردم همین دوست جمله دیگه وقتی خداوند این نور پرت میکنه تو دلت دلت وسیع میشه، شه پیدا میکنه و قلبت مسرور میشه. نور ایمان روشنایی شنایی است همینطوری که این نور ما رو آرامش میده، ده نور ایمان دیگه آرامشش خدا می الله و نور و سماوات و امام ترمذی در جامعه خودش روایت میکنه از پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم که قال رسول الله صلی الله عليه وسلم سلم اذا دخل النور القلب انفصح وانشرح قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله قال الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد والاستعداد و للموت قبل نزوله امام ترویزی روایت میکنه که پیانبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی که نور ایمان بر دل مؤمن و بر دل مسلمان و بندگی خدا وارد شد انفسحه دل وسیع میشه و و آرام می گیرد کردن یا رسول الله ما علامت ذالکه علامت و نشانه این که دل وسیع میشه و منشرح میشه چیه؟ رسول الله صلی و وسلم فرمودن وقتی دل آرام گرفت و وسیع شد ال و تو خلود مشتاق آخرت میشه تو این دل شوق و اشتیاق آخرت میاد و از دار فنا تجافی میکنه فاصله میگیره همینجور که در دنیاست احساس میکنه که این برای این دنیا ساخته نشده بعضی انسان ها همینجور که روی این زمین دارن حرکت میکنن از حرکتشون میگه این آیندوی بزرگی داره این آیندگی درخشانی داره و بعضی از مسلمان ها همینطور که راه میرن میدونه که اینها مال این دنیا نیستن در صدر اسلام هم نشانه های زیادی داشتیم که شب من به دهتشون اشاره کردم خلفای راشدین و اشره مبشره روی زمین راه می میرفتن پیامبر اشاره میکرد که اینها بهشتیان. اینها بهشتیان. چون از راه رفتنشون و از حرکتشون مشخصه که اینها مال این دنیا نیستن و دل به این دنیا نبستن و مشتاق آخرتن و دعای حضرت عمر رضی الله عنه که همیشه دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرد نصیب من کن تعجب میکردند صحابه شهادت باید به جهاد بره خارج از مدینه بره چطوری میگه شهادت در راه خودت و مرگ در مدینه تا اینکه که در مهراب رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط عبولولوه مجوسی ایرانی که آرامگاه بزرگی الان در کاشان هم براش درست کردن در کاشان اگر برید یک آرامگاه بزرگی عنوان مرد بزرگی که بزرگترین خدمت به جهان اسلام کرده و این مرد خطرناک و از بین برد در خود محراب خنجر ناجهان مردانه از پشت بارده و دعای عمر مستجاب شد اما قبل از اینکه شهادت نصیبش بشه سوال کرد چه کسی منو ضربه زده پسرش گفت که ابو لولو ام مجوسی گفت الحمدلله که یک مسلمان به من ضربه نزد گفت بابا و عبدالله پسر بزرگش برو پیش امیر المؤمنین آیشه سلام منو بهش برسون بگو بابا سلام میرساند و بابا که امیر المؤمنین باشه خلیفه مسلمین باشه خنجر خورده و این خنجر بوی شهادت ازش میاد اگر من در این ضربه مردم و شهید شدم شما اجازه میدی که من بیام کنار شوهرت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه و کنار بابای تو اونجا در حجره تو و خانه تو دفن بشم من دوست دارم اونجا بخوابم ولی اونجا مال توست یکی شوهرت یکی بابا تو دوست داری اونجا بخوابید ام المؤمنین آیشه رضی الله عنهما گفت برو به بابا سلام برسم به امیر المومنین بگو من از حقم تناظر می کنم و اینجا رو به شما اهدا می کنم یا تو میاد دیشب گفتم که رسول الله صلی الله علیه سلم در وصف ابو بکر و عمر می گفت دخل تو انا و ابو بکر و عمر خرج تو انا و ابو بکر و عمر از بس که گوستشان داشت و بهشون نزدیک بود همیشه می من و عبو بکر و عمر داخل شدیم من و عبو بکر و عمر خارج شدیم من و عبو بکر و عمر اونجا رفتیم من و عبو بکر و عمر از اونجا آمدیم به امیر المومنین اون ضربه شهادتش بود و دعاش مستجاب شد و دلش همیشه هوای آخرت داشت چون که منشراها صدر شده بود و نور ایمان بر اون تابیده بود دیگه به این دارالفنا اعتنایی نمی کرد اما دارالفنا رو آباد کرده بود با عبادت و تقوا و عدالت و دادگریی که داشت. و علمای بزرگ <تصفيق> میگویان اگر که احساس میکنید دلت سنگین میشود دلت سخت میشود زندگی امیرالمومنین عمر ابن خطاب رو مطالعه بکنید. ما فکر میکنیم اون مرد خشینی بوده. <تصفيق> نه مهربان به خیلی مهربان میده و مهربانیش در حق ما ایرانی ها ثابت شد که دین را برای ما آورد وگر ما الان آتش میپرستیدیم آتشی که با آب خنسا میشه و آبی که با باد خنسا میشه فکر نکنی آتش قبیل شایستگی خدا خدا بودن داره این آتشی که همه چیزو می میسوزونه می با آب خونسا میشه آب بریزوش خاموش میشه پس این نیمیتونه خدای ما باشه آتشی که خاموش میشه نیمیتونه خدا باشه اون رب العالمینی که خاموش نمیشه و ام المامنین آیشه بعد از این که نمودن در قبرستان بقی ده خفدن الان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر این ستا در حجره ام المؤمنین آیشه خوابیدن و تجافی اندار الغرور و الاستعداد و للموت قبل نزوله و آماده مر بودن قبل از اینکه مرگ برسد وقتی نور ایمان میتابد در تاریخ بشریت گذشته و معاصر و آینده بجز در فرهنگ اسلام و در ابناع مسلمین و فرزندان مسلمین در هیچ ادیان منحرفی امروز این نیست که طرف به خاطر رضای خدا با این همه آرزوهاش در سن 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی هنوز زن نگرفته هنوز خونه درست نکرده هنوز تحصیلاتش کامل نشده هنوز آرزوهای متنوع و مختلفش فراهم نشده ده کیلو TNT انتی به شکمش ببنده به کمرش ببنده بره خودشو منفجر بکنه و صد تا سهیلیست بکشه واقعا این چیز عجل و غریبه برای یهود این در فرهنگ شهادت طلبی فقط در فرهنگ غنی اسلامی هست که دار سلام و دار الخلود و رضای رب العالمین در نتیجه نور ایمانی که بر دلش میتابه امروز اگر عالم اسلامی با میلیون ها جوان اش بزنید چند میلیون آماده شهادت میتونید در کشور افغانستان وقتی که روس ها وارد شدن فقط 5000 جوان سعودی که میلیونر بودن اونجا بودن برای شهادت رفتن 5000 فقط جوان سعودی بین 15 سال و 18 سال و 20 سال و 25 سال اونهایی که مرسدس بن زیر پا نه اون گدا ها اسلام دین ترگستی نیست ولی اسلام با اونهایی که کل دورن افرادی رو تربیت کرده همونطور که اونها زندگی رو دوست دارن اونها مرگ در راه خدا و مردن در راه خدا رو دوست دارن اولین عامل هدایت و توحید دومین عامل نور ایمانی که بر دل انسان میتابد سومین عامل علم وقت ما هم تموم شده پرداشم انشاءالله به دوتا از حوامل دیگر می پردازیم. قرار نشده بیشتر دویم ساعت از عزیزان بشیم دنبالش انشاءالله فردا که انشاءالله تو حافظتون بمونه تو ذهنتون بمونه ما هم داریم ضبط میکنیم اینشاءالله این فیلم بعد از رمزان میکس میشه دوستانی که علاقه مندن میتونن دوباره مروری بکنن و به دوستانشون اگه اشکالات هم داره برطرف بکنن تذکر بدن و در اختیار دوستانشون قرار بدن سبحان ربک رب رب لزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین